حکایت، از صحبت یاران دمشقم ملالتی پدید آمده بود، سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات اونس گرفتم تا وقتی که اسیل فرنگ شدم، در خندق ترابلوس با جهودانم به کار گل بداشتم. یکی از رؤسای حلب که سابقی میان ما بود، گذر کرد و بشناخت و گفت ای فلان این چه حالت است؟ گفتم چه گوگم، همی گریختم از مردمان به کوه و به دشت که از خدای نبودم به آدمی پرداخت. بیاز کن که چه حالم بود در این ساعت که در طویله نامردمم بباید سا. پای در زنجیر پیش دوستان به که با بیگانگان در بوستان بر حالت من رحمت آورد و به ده دینار از قیدم خلاص کرد و با خود به حلب برد و دختری که داشت به نکاح من درآورد به کابین صد دینار مدتی برآمد. و طغی شتی نافرمان بود زبان درازی کردن گرفت و عیش مرا منقص داشتن، زن بد در سرای مرد نکوه هم در این عالم است دوزخ او زینهار از قرین بد زنها ها و گنا رب بنا عذابنا باری زبان تعنت دراز کرده همی گفت تو نیستی که پدر من تو را از فرنگ باز خرید؟ گفتم بلی من آنم که به ده دینار از قید فرنگم باز خرید و به صد دینار به دست تو گرفتار کرد. شنیدم گوسبندی را بزرگی رهانیت از دهان و دست گرگی. شبانگه کارد بر حلقش بمالی. روان گوزپند از بی بنالید که از شنگال گرگم در رو بودی، چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی.